جلو و سف درختان بید بود نور ماشین گاهی شاخه های آنها را روشن می‌کرد. سگها پارس کنان چند قدم دنبال ماشین دویدند اما زود برگشتند گویا وظیفه داشتند با پارس و نشان دادن خشم و تیزی دندانهایشان آنها را بدرقه کنند ماشین دور شد دیگر از خانه خبری نبود تپه ها پشت سر هم چیده شده بودند گاهی نور و ماشین نیمروخشان را نشان میداد تنهایی یا بقیه همین استوار پرسید، اسمایل سکوت کرد با تو هم، لابد میخوایم بریم پارساباد و بدفلنگو ببندین اون طرف آب کدوم آب؟ خرخودتی، فکر کردی من نمیدونم من متوجه نیستم خیلی خوب هم متوجهی، منتها خودتو به نفهمیدن زدی حالا برای چی زدی اون زنو کشتی؟ نقشه شما رو فهمیده بود؟ کدوم نقشه، کدوم کشتن؟ من نقشه ای تو کلمون نه کسی رو کشتم. اما قاتل رو اسوار استوار برگشت و نگاهش کرد. صورتش تکیده و رنگ پریده بود. باند و پارچه زخم سرش از زیر کلاه پیدا بود. چی گفتی؟ گفتم قاتل می شناسم. مرغ پختم به این حرفت میخنده. حکایت اون دوزیه که فرار میکرد و داد میزد آی دزد بگیرین بگیرین و خندید رویش رو برگرداند در حالی که به جلو نگاه میکرد گفت. به قول سرخان دو دوتا چهارتا. بازم به قول سرخان زیر کاسه نیم کاس است. سب کن قز لالا. همیشه سفرهای شبانه را دوست داشت. وقتی درختها ها و بوته ها از اطراف ماشین به سمت عقب می گریختند، دوچار حیجان می شد. از دیدن چشم های درخشان خرگوش ها و زیر نور چراغ ماشین لذت می برد. مزاره گندم، جو، شبدر، کلم، سیب زمینی. روستاهای خفته در برایش زیبا و خاطرانگیز بودند. شب پر از راز و خیال بود، اما امشب گویا تمام آن شگفتی ها و زیبایی ها رنگ باخته بودند. ماه مثل لکه شیری رنگی چسبیده بود به تاغ تیره ی آسمان و با اندوه به زمین نگاه می کرد. همه چیز سرد و افسرده بود و جاده مثل مار به دور تپه ها میپیچید و در دل شب ادامه می یافت. قفسه سینه‌اش بر اثر فشار آن دو سرباز به درد آمده بود. به سختی نفس می کشید آرزوی رهایی داشت. حسرت صعود به سبلان و نماز خواندن و نفس کشیدن در قله و نگاه کردن به دشتهای گسترده شده در پای دامنه که تا دا های خیال کشیده شده بودند. جاده به رودخانه و درختان بید نزدیک شد. از آنجا آمد نزدیک نیزار و دریاچه که آرام زیر آسمان خفته بود. با حسرت به آن منظره ها نگاه می کرد باد روی پوست دریاچه چین انداخته بود. دلش میخواست سرعت ماشین کم شود تا او بیشتر بتواند تماشا کند به چمنزار پیرامون دریاچه چشم دوخت همینطور به نیزار که در باد موج برمی‌داشت در آن حال چشمش به اسب سفید افتاد که از میان امواج بیرون آمد و در ساحل دریاچه ایستاد نمی توانست باور کند خیره شد اسب چند بار یالهایش را تکاند و ذرات آب را به اطراف پاشید و سپس در چمنزار تاخت در زیر نور ماه زیبایی خیره کننده ای داشت برای بهتر دیدن اسب بیشتر گردن کشید سنگینش روی شانه یکی از سربازها افتاد استوار سوار که متوجه گردن کشی و جابجایی او شده بود گفت ها چیه مثل اینکه خیالات برد داشته بعد خطاب به سربازها گفت سرشو بکنین زیر صندلی سربازها از هر دو طرف بر گرده‌ی اسماعیل فشار آوردند و پیشانی اش را میان زانوهایش فرو بردند دیگر نه دریاچه را دید و نه ساحل آن را اما اسب سفید در ذهن او همچنان میتاخت تا زمان توقف جیب نگذاشتن او سرش را بلند کند. مدتی بعد رسیدند اجازه دادند سرش را بلند کند. کاسه چشمهایش درد گرفته بود در باز شد سربازی که پیاده شده بود دست او را گرفت و محکم کشید. افتاد روی ارسی توی باغچه بلند شده از باغچه بیرون آمد نگاه تندی به سرباز کرد. چقدر شلی؟ سرباز گفت و خندید او حرفی نزد حیات بزرگی بود با چند چنار قدیمی و تبریزی بلند روبرو ساختمان دو طبقه بود ظاهر عیانی داشت گویا روزگاری متعلق به ملاک منطقه یا فرد متمول دیگری بوده سربازی با کلاه آهنی و توفنگ کنار در نگهبانی میداد. رئیس پاسگاه از کنارش گذشت نگهبان پاشنهای پایش را به هم کوبید کمی روی پنج بلند شد. وتفنگ را به پهلویش چسباند و سرش را بالا گرفت استوار دست راستش را به احترام بلند کرد و رفت داخل سربازها او را وارد ساختمان کردند لامپی که از سخف آویزان بود راهرو را روشن میکرد استوار مقابل در اتاقی ایستاده بود وقتی آنها رسیدند با سر به ته راهرو اشاره کرد بازداشتگاه سربازها او را به انتهای راهرو بردند روبروی در فلزی رنگ و رو رفتهای ایستادند بالای در پنجره کوچکی بود که با چند میله افقی آن را مشبک کرده بودند. سربازی مقابل در نگهبانی میداد. یکی از همراهان اسمایل به او سلام داد و گفت مهمون داریم. این وقت شب مهمون؟ این یکی فرق میکنه. رفیق گرگه. چی؟ هیچ چیاله حالا در باز کن؟ نگهبان کلیدش را در آورد و با آن قفل در را باز کرد. چند بار پیچاند و در همان حال پرسید؟ گفتی رفیق گرگ؟ آره بابا همون که شوا گورگ میومده بالای پشت بومش دیگه بنفش دره آهان مواظب خودت باش در باز شده بود نگهبان با تعجب و ترس به اسمایل نگاه کرد و از سر راهش کنار رفت تا او داخل بازداشتگاه شود وقتی داخل شد از پشت سر صدای بسته شدن در را شنید کلید درون قفل چرخید و صدا کرد اتاق مستطیلی بزرگی بود که با یک لامپ بدون سرپوش کمی روشن شده بود انتهای اتاق چند نفر خوابیده بودند هر کدام پتویی رویش کشیده بود با سر و صدای در و باز و بسته شدن آن گویا بیدار شده بودند و تکان می‌خوردند و جابجا جا می شدند چند لحظه نگذشت که یک به یک سرهایشان را از زیر پتو بیرون آوردند و گردن کشیدند و با چشمهای خوابالود نگاهش کردند موهایشان بلند و ژولیده و ریش پریشانی داشتند یکیشان با چهره دمغ چرت زنان گفت پتوی اضافی هست برشدار همونجا بکش رود. گوشه پتویی را که میان دیوار و در افتاده بود، گرفت و کمی آن طرف پرت کرد و رویش را برگرداند. اسماعیل بلا تکلیف ایستاده بود. اول کفشهایش را درآورد و آمد روی موکت نمدار و نخنمایی که روی کف سیمانی اتاق پهن کرده بودند. بعد به طرف پتو رفت. نگاهش بیشتر متوجه آن سه نفر بود. خم شد و پتو را برداشت. یکیشان گفت: یادت باشه سلام نداده اومدی تو. مردد ماند. خواست سلام بدهد دید خیلی بی و زای می شود گفتم مزاحم خوابتون نشم آدم باید به اتاق خالی هم سلام بده دومی دو گفت از اتاق خالی هم خداویسی کنه سومی گفت حالا برو بخواب اگه جیشم داشتی یارو رو صدا کن راست میبرادات اونجایی که میخای اسماعیل خندهاش گرفت پتو را برداشت و رفت دورتر از آن سه نفر کشید رویش نیم را چند تا زد و به جای بالک زیر سرش گذاشت و دراز کشید. اتاق بوی نم و نامی داد. بوی عرق، بوی پا، بوی توتون سیگار. گاهی صدای عبور ماشین سنگینی از خیابان روبروی پاسگاه سکوت شبانه آنجا را می شکست. صدای گفتگوی نگهبان ها هم می و دورتر میان باقها و در چهار دیواری بزرگ خانه ها سگ ها با بهانه و بی بهانه پارس می کردند. قروپوان سه نفر خیلی زود بلند شد. برای او خوابیدن در آن شرایط دشوار بود. پس از برگشتن از کوه به آسایش خانه آنها عادت کرده بود. تخت مناسب، غذای به موقع برایش فراهم بود و با آنها خوب کرده بود. ولی حالا موکت پاگرد و مرتوب پتوی بدبو و اتاق سرد و نمور اوضاع را برایش دشوار کرده بود. با این حال ناگزیر چشمایش را بست. رژه تصاویر حوادث چند ساعت قبل پشت پلک‌هایش شروع شد. گاهی به ترتیب زمان وقوع و گاهی با شکست توالی زمانی و پس و پیش شدن حوادث می‌آمدند و میرفتند و تکرار میشدند. کم کم سرما هم به سراغش آمد. پهلوهایش درد گرفت. بلند شد و نشست. به دیوار تکیه داد و پاهایش را دراز کرد. آن سه نفر هر کدام پتویی را تا کرده و زیر سرش پهن کرده بود. علاوه بر آن هر یک بالش کوچکی هم زیر سر داشت. به دقت نگاهشان کرد. هر سه کج خوابیده بودند و صدای خور و پفشان هم با یکدیگر فرق می نمیدانست جرمشان چیست؟ دزدی، تصادف، آدم کشی؟ جرم خودش که آدم کشی بود. قتل یک زن، یک زن مظلوم و بیگناه، زنی که مورد احترام اهالی بنفش دره بود. غیر از دو یا سه نفر همه آنها حاضر می شدند علیه شهادت بدهند. نمی توانست بیگناهیش را ثابت کند، پیشا پیش محکوم به قتل بود. به اضافه آن چیزهایی که حتما رئیس پاسگاه و سرخوانبان میافزودند مانند خرابکار و ضد امنیت ملی و داشتن رابطه با آن طرف است همکاری با یک ملای تبعیدی و از این دست اتهامها که به وفور در آستینشان یافت می جابجا جا شد: پتو را از روی پاها سینهش بالا کشید دستهایش را زیر پتو فرو برد چشمایش را بست دست داشت نشسته بخوابد نمیخواست تسلیم آن موکت بدبو و نمور بشود و به خاطر چند ساعت خواب خودش را کوچک کند زیر پلکایش کم, کم گرم شد و از همان دو نقطه به مقاک خواب قلتید ابتدا خواب و بیداری بود و راندن چند پشه پاولند که وزوز کنان روی صورتش مینشستند و نیشش میزدند. مدتی بعد آنها را هم نفهمید تازه آن موقع بازی سر و گردنش شروع شد پاشنه سرش را به دیوار تکه می و راست نگه ر اما با تسلط خواب اختیارش را از دست میداد. سرش پایین میافتاد و تیزی چانه میخورد می‌خورد روی جناق سینهش و خیلی زود درد می‌پیچید پس سر و گردنش و بیدارش می‌کرد این بازی هم مدتی ادامه داشت تا اینکه دیگر چیزی نفهمید جا جایی سر و نه درد گردن و کمرش را وقتی بیدار شد دید مچاله روی زمین خوابیده است زانوهایش را چسبانده به شکمش و نیمرو را گذاشته روی موکت تنها توانست به سمت دیگر بغلتد و پتو را تنگ به دورش با سر و صدای کامیون‌ها و جیغ که بلند گنجشک‌ها که روی شاخه‌های بید حیات پاسکا تجمع کرده بودند چشمهایش را باز کرد از پنجره بازداشگاه سفیدی آسمان پیدا بود آن سه نفر هنوز خواب بودند اما نه به آن ترتیبی که سر شب دیده بود بلکه به شکلی دیگر اما همچنان کج و کله با اندامی پیچیده در و گره خورده از جا بلند شد مفاصلش درد گرفته بود جای پود موکت مثل مهر برجسته روی صورتش باقی بود به طرف در رفت پشت دریچه فلزی ایستاد تا برکه نگهبان بیاید به زحمت توانست راه را ببیند نگهبان روی نیمکد نشسته بود و چرت میزد آهسته صدایش زد تا نترسد با این حال سرباز از خواب پرید و کلاه آهنی روی سرش لخ خورد و خودش را رساند رو به روی دریچه آهنی. و با چشم سرخ و خابالود و صورت عبوس گفت چه تا اول صبحی سرکار سرکار شرمنده دستشویی دارم زود هنوز برو درست بگی سرجت سعی کرد لبخند بزند و در عین حال به دقت نگاهش کند ببین سرکار اینکه من میگم دستشویی دارم نه دست خودم و نه به حرف تو وقتی اومد یعنی باید خودمو به دستشویی برسونم و یعنی مجبور میشم خلاف قانون عمل کنم حالا فهمیدی یعنی چی؟ سرباز رفته رفته چشمهایش گشاد می شد و خواب از سرش می پرید تو که اینقدر شولی چطور تونستی آدم بکشی؟ من نکشتم استوار ما رو چی؟ زدی داغونش کردی و خودتو انداختی تو رودخونه من استوار شما رو نزدم پس این کارا رو کی کرده؟ میخوای بدونی؟ آره همش زیر سر گرگه نگهبان کلاهش را که افتاده بود روی ابروهایش بالا کشید دهانش از باز مانده بود. راسته که تو رفیق گرگی هر شب میومد اومده سراغت؟ نه دروغ میگن. گرگ رفیق منه. حالا هم احتمالا همین اطراف باید باشه. ببینم سرکار در رو باز میکنه یا من قانون زیر پا بذارم؟ باز میکنم، باز میکنم. باز کرد و تا کنار دستشویی هم راهش آمد. چند دقیقه بعد وقتی بیرون آمد هنوز آسین هایش بالا بود و از ریشش آب میچکید. در راه سرباز پرسید خدمت رفتی؟ نه مواف شدم خوش به حالت من هنوز یازده ما دارم نگران نباش تموم میشه رفت داخل بازداشگا سرباز در را پشت سرش قفل کرد گوشه و کنار چشم دواند دنبال مه رو جانماز میگشت پیدا نکرد موقع داخل شدن به بازداشگا جیبهایش را خالی کرده بودند چیزی همراهش نمانده بود سمت قبله را پیدا کرد و قامت بست و ناگزیر روی همان موکت پیشانی گذاشت و سعی کرد نفسش را در سینه حبس کند تا بوی نمونای تنیده در بافت موکت را استنشاق نکند نمازش را آهسته می‌خواند نمی‌خواست مزاحمان سه نفر بشود اما آنها بیدار شده بودند و همراه با خمیازه پچپچ می‌کردند نگران شد که مبادا او بیدارشان کرده باشد وقتی سلام آخر را داد و با تکان دادن دو دست را نَفَر کرد یکیشان سنگینه را روی کفه دستش انداخت و گفت عوض سلام دیشب و امروز صبح در آوردی. قبول باشه. دومی گفت ما رو هم دعا کن. به آقا مولفض بیگناهیم. با ما طرف بودن. پرونده برامون درست کردن. این رو سومی گفت. به رویشان لبخند زد و سلامشان داد و گفت توکل به خدا. نگهبان در را باز کرد. کمی نان و پنیر همراهش بود. و نفری یک لیوان چای و چند حب قند بهشان داد این شد سبحانشان پس از صبحانه متوجه شد یکیشان که راننده است تصادف کرد و آدم کشته دومی را به جرم دزدی گرفتند و سومی با میرا به دهشان دعوایش شده و با چوب زده سر او را شکسته شب دوم شامشان را خوردند و آماده خواب بودند که نفر چهارمی هم به آنها اضافه شد جوان بود و قد بلند با موهای مشکی کمی مجعد لباس سپاه دانشتنش بود. کنار در بازداشتگاه بلا تکلیف ایستاد و با اکراه به آنها نگاه کرد. اسماعیل به اون نزدیکتر بود. سلام داد و با سر تعارف کرد. تازه وارد به طرفش آمد و بالای سرش ایستاد. بفرمو بشین. ترسیده بود. با حراس به اطراف نگاه می کرد. پرسید. همین چند تا این؟ بله، فعلا همین چند تا این. البته شاید کم و زیاد شدیم همینجا میخوابین؟ چاره نداریم ود همینه دیگه. وضعیت اینجا چطوره؟ و باز با انزجار به دیگران نگاه کرد. به اینجا میگم بازداشتگاه به همین ترتیب که میبینی. خیلی نگه همون میدارن؟ نمیدونم. منم بیخبرم. تازه وارد با دقیقت نگاهش کرد و پرسید. ببخشین. شما به چه جرمی بازداشت شدین؟ بنده به جرم آدمکشی خدمت شما هستم. تازه وارد ترسید یعنی واقعا شما قاتلین؟ آدم کشتین؟ نه بابا تهمت میزنن حالا چرا وایستادی بیه بشین؟ با کفش آمد نشست نگاهی سرگردان بود آشکار بود که آن شرایط برایش دشوار است حالا شما رو برای چی آوردن اینجا؟ هیچی چی بابا علکی امروز صبح از مرخصی برگشتم گرفتنم آوردم اینجا گفتم غیبت داشتی همین؟ یعنی چون غیبت کرده بودی بازداشت کردن؟ نه. به هم تهمت سنگینی زدن. گفتم وقتی مرخصی بودی رفتی تهران تو تظاهرات شرکت کردی. تهران بودی؟ آره، پریروز روز اونجا بودم. اتفاقا تظاهرات از این جور چیزا هم بود. گفتم تو رو دیدن که قاطی تظاهرات بودی. حالا واقعا بودی یا نه؟ نه بابا، نامزدم گفت بیا بریم تماشا کنیم. چند دقیقه وایسادیم پیاده رو همینجور نگاه کردیم. نه یک کلمه شعاری، نه حرفی، نه چیزی راستشو بگو اصلا من اهل اینجور چیزا نیستم، تظاهراتو قبول ندارم خدمتم که تموم بشه دست نامزده و میگیرم و میپرم نافو پاریس. به من چه که اینا با هم دعوا دارن؟ حرفش به اسماهیل برخورد اما به روی خودش نیاورد با دقت بیشتری نگاهش کرد رفتارش به طبقه اعیان شبیه بود اش، پوست لطیفاش اشرفی و صورت سفید و دست های ظریف و انگشت‌های های صدفیاش حالا دیگه فکرش هم نکن بیا این پتو رو بکش رو و تخت بخواب من عش روی تخت میخوابیدم حالا چطوری رو این زمین تخت بخوابم حالا بخواب بالاخره میخوابی یا امشبم میگذره جوان با اکراه پتو را گرفت و با پوتین و لباس رسمی دراز کشید نمیتوانست بخوابد. از این دنده به آن دنده و هر از گاه آه میکشید. اسمایل پرسید چرا نمیخوابی خوابت نمیاد چرا میاد اما بدون بالش اصلا نمیاد اینجا بالش پیدا نمیشه بالش خودش رو از زیر سرش برداشت و داد به او بیا اینم بالش گرفت و گذای زیر سرش آهان یکم بهتر شد حالا چند بار سرش را روی بالش جابجا کرد تا به آن عادت کند چشم هایش را بست در از اسماعیل بدخواب شده بود کاسه ای سرش بر اثر سفتی زمین و سرمایه موکه درد می گرفت و یک حرف مدام در سرش می پیچید و به هر دلیل و بهانه ای تکرار می شد پاریس صبح بی سر و صدا نمازش را خواند و دوباره خوابید این بار وقتی بیدار شد جوان را ندید جایش خالی بود فکر کرد شاید برای دستشویی رفته باشد و دیر یا زود برمیگردد اما خبری نشد یکی از بازداشتی ها که متوجه او شد گفت یارو فلنگو بست و رفت. حرفی نزد؟ چیزی نگفت؟ نه بابا، اومدن دنبالش با عزت و احترام بردن. چه حرفی بزنه؟ اما صدا همچنان در سر اسماعیل می پیچید. ناف پاریس. صبونه، زود بجانبین، زود. سرباز پشت در داد می زد. موقع خوردن صبحانه یک فکر بیشتر از همه مشغولش کرد و آن شنیدن برپایی تظاهرات در تهران بود. افسوس خورد که چرا بیشتر درباره آن تظاهرات از جوان نپرسید. از طریق رادیو تظاهرات پراکنده را دنبال می‌کرد، اما ظاهراً این تظاهرات بزرگتر از بقیه بوده. حوصله‌اش از یک جا نشستن و قمرنگ زدن سر می‌رفت. بیشتر قدم میزد. موقع راه رفتن بهتر فکر می‌کرد. از این سر بازداشتگاه تا آن سرش می‌رفت و برمیگشت و گامهایش را می‌شمرد. حساب آنها را با انگشتان دستش نگه می‌داشت. دور از جناب تهران رفته بودیم وحش یه گرگ تو قفس بود همینطور هی از این سر قفس میرفت اون سر قفسو برمیگشت نه با کسی کار داشت نه به کسی نگاه میکرد هی راه میرفت فقط دور از جناب اما اینم بگم انصافا دلم براش سوخت نمیدونین چطور راه میرفت به صورت اسماعیل نگاه کرد یه دفعه ناراحت نشی دور از جناب گفتم بابا بیا بشین تو هم حالا مگه کشتیات قرق شده هی میری هی میای به جایی تو سر من گیج رفت بیا دو کلمه با هم اختلاط کنیم تازه نشسته بود که صدایش کردند آهای تو بیا بیرون ملاقاتی داری من؟ ملاقاتی؟ تعجب کردی؟ داری دیگه؟ حالا پاشو معطل نکن سنگین بلند شد کفشایش را پوشید از بازداشتگاه بیرون آمد سرباز توی راه رو منتظرش بود او را به یکی از اتاقها برد چهره آشنای آنجا نشسته بود از دیدنش تعجب کرد و به طرفش رفت. آنا تو اینجا چی کار میکنی؟ آنا از روی صندلی بلند شد. تکیده تر شده بود. صدایش میلرزید. کور بشم اسمایید. بمیرم الهی بغزش گرفت. نتوانست ادامه بدهد. اسمایی را بغل کرد و بوسید. چرا خودتو به زحمت انداختی این همه راه بلند شدی، اومدی اینجا؟ من خودم نیمدم. منو فرستادن. تعجب کرد فرستادن؟ کی؟ اگه گفتی؟ به فکر رفت اطراف اتاق چشم دواند نمیدونم سونا سونا گفت بیام و بگم که تو از پاسکا بیرون میای. به من تهمت قطع زدم باید برم دادگاه ممکن نیست از اینجا بیرون بیام سونا خاستگاری رئیس رو قبول کرده به شرطی که تو رو از اینجا بیرون بیاره اونم قبول کرده آره قبول کرده، حالا حتما خودش با تو صحبت میکنه، گفت بیام بگم تا نگرانی در بیای اسمایل سرش را انداخت پاین و به مزاییک های و رنگ کف کفه و خیره ماند آنها سایده و خورده شده بودند، لعاب رویشان رفته بود، آه کشید خودش بدبخت کرده چرا بدبخت؟ همه دختر میرن خونه شوهر، سونا هم یکی؟ نه، سونا یکی از اونا نبود، اون از رئیس پاسکا بعدش می اومد. دخترها اولش همینطورین بعد راضی میشن. برای اینکه میبینن چاره ای ندارن، ناچار میشن. آنا خندید. بازم خدا رو شکر که تو برمیگردی خونه، صد هزار مرتبه شکر. بله شکر، اما من از اولم جام اینجا نبود. سرخان تهمت زد و رئیس پاسگاه هم از من منو گرفت انداخته اینجا. حالا همون کسی که تو رو گرفته و اینجا انداخته، خودش هم آزادت میکنه. استوار خودش گفته سونا باهاش شرط گذاشته اونم قبول کرده پس چی دوباره سرش رو پایین انداخته به مزایک های فرسوده خیره ماند. در آن حال احساس کرد سرش داغ شده و شقیقه‌هایش میکوبد. تنها اومدیانو نه سلطان هم اومده سلطان حالا کجاست بهش پول دادم بره برای خودش کیک و نوشابه بخره بخوره بعدم بیاد اینجا و ماشین بگیریم برگردیم تو نگران من نباش نگران هیچ کس نباش جونت سلامت چطور میتونم نگران نباشم از وقتی پامو گذاشتم بنافش درد درد شما شروع شد من که تو رو میشناسم میدونم مثل قطره بارون پاکی اسمایل دست آنا را گرفت و بلند کرد و بوزید صدای سرباز در آمد وقت ملاقات تموم شد تموم آنا با ناباوری از جا بلند شد به دست بریده ای اولفان سپردمت. از اتاق بیرون آمد. سرباز اسماعیل را به بازداشتگاه برگرداند. وقتی داخل شد آن سه نفر نبودند. وسایلشان هم نبود. به جز مقداری پوست تخمه و چند چوب کبریت و کمی خاکستر سیگار نشانی از آنها نمانده بود. جای خالیشان دلش را فشرد. برگشت به طرف در رفت. از نگهبان پرسید: اینا رفتن؟ میبینی که رفتن؟ میخواستی همیشه باشن؟ همه میرن، من و تو هم میریم، پس چی؟ فکر کردیم میمونیم؟ اون که بله، خیلی خوب، حالا که فهمیدی برگد برو سریجات برگشت، آنقدر راه رفت که خسته شد و نشست به کار سنا فکر میکرد، تغییر عقیده او برایش معما شده بود چطور ممکن بود در مدت چند روز حرفش را پس بگیرد و به ازدواج با رئیس پاسگار رضایت بدهد آیا با مرگ مادرش احساس کرده پشتیبانش را از دست داده و سرخان او را نگه نخواهد داشت یا به خاطر آزاد کردن او از بازداشتگاه به این ازدواج رضایت داده؟ آنا می گفت شرطش با استوار آزادی تو بوده. وقتی دیدمش باید بپرسم، باید علتش را بپرسم. نهار هم مهمان پاسگاه بود. رهنگام هنگام غروب آفتاب نگهبان آمد او را به اتاق رئیس پاسگاه برد. استوار وسایل شخصیش را پرت کرد به طرفش. برشون دار زود گگوه تو از اینجا گم کن دیگه سر و کلت تو حوزه استحفاظی من پیدانشه. دلیل کافی برای نفله کردنت دارم پس تا میتونی از اینجا دور شو. وسایلش رو که میان شلیط پیچیده شده بود برداشت بند پوتین، کمربند پول و بقیه چیزهایش بود شنیدی چی گفتم؟ الان مملکت مثل زمان مصدق خر تو خر شده سگ سهاحشو نمیشنسه. یه خشاب گلوله توی اون خالی میکنم و جازات میندازم جلوی سگای هیچ کسم نمیتونه به من بگه چرا متوجه ای که برو پشت سر تو هم نگاه نکن